بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين أما بعد دو من درست الشرح منزومية أبو اسحاق البيري رحمه الله وأسكان فسيح جناته أولاً بيت ان منزومي رتشنين آغاز البيري ميقوية رحمه الله تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر ابت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا متنتبهت متنت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى ابو اسحاق رحمه الله واسكنه فسيح جناتك نسيحتش را انجا انشنين آغاز میکنه يقول يا در أبلين بيتش تفوت فؤادك الأيام تفوت أصل تفتيت تكثيره خرد شده وفؤادم كي الله بقيم دل إنسان قلب إنسان منظور خود إنسانه اشاره بقون فرمودي الله جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد الضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه قريبي وليكن الان روب ضعفي تو دري خرد ميشي شكسته بيشيد دري اون باتري عمرت تمام ميشه دري خرد ميشي بياد داشته باش اولين ياداوريش بياد داشته باش به اون دوستش ميگه كه در اين روزگار در اين زمانه اي كه تو دري زندگي ميکني عمری که تو داری سپری میکنی، از عمرت کاسته میشه. نه بر این فکر بکنی بر عمرت داره افزوده میشه چهل شدی چهل یکی چهل دو هست. بر عمرت افزوده نمیشه. از عمرت داره کاسته میشه. عمر آمده بین شصت تا آفتاب. تو داری نزدیک میشی به مرگت. بیاد داشته باش. داری یاداوریش میکنه. تفوت فواده کلایامو فت. یعنی داره سخت را خرد میکنه. داری خرد میشی. داری شکسته میشی در این دنیا. چیکا کردی با اون عمریکه الله جل وعلا به عنوان یک نعمه در اختیار گذاشت و اون جسم اون تن چیکار کردی با اون جسمت فقط همین خوردش کردی به این سنش رسوندی چن تا بره و چن تا مرغی خوردی همین کجا رفت اون مرغان کجا رفته اون بوز و بره ها کجا رفتن گوشت جانت شدن ذوب میشه سریف میشی خورد میشی به یاد داشته باش تفو تو فؤادک الايام وتنحت جسمک الساعات نحت نحت بری کندنه ن جسمت داره خرد میشه داره تراشیده میشه همونطور که روح روانت فؤادت قلب و دلت داره شکسته میشه خرد میشه تن و جسمت و جانت هم همینطور داره یاداوری میکنه به اون حالت ظعفی که انسان بهش میرسه به فکر عاقبتت باش به اون روزی که خرد میشی تن و جانت خرد میشه یکی از درس ها و عبرتا که انسان میتونه بگیره از قران الله جل و از قصص های پیغمبران چیزی که ابو الحق داره بهش توصیه میکنه هم اخرت داشتن هم عاقبت داشتن این چیز را قشنگ ما میبینیم در دعوت انبیا حالا چه در دعوت نوح چه در دعوت ابراهیم علیه الصلاه السلام مثلا من نمونهشو میگم از اون چیزی که الله جل و اعلی یاد میکنه نمونه ها خیلی مهمه صندقت بکنه آیا هممون همه اونها هست الله جل و علا از باب اینکه پیغمبرش توصییه بکنه میگه اولائک الذين هدا الله فبهداهم مقتدی و نه هد شده راه اونها راه بیگی راه پیغمبران اگر برای پیغمبر راهی راه پیغمبران راه ابراهیم و نوح برای ما هم از باب اولا راهه ابراهیم علیه الصلاه و السلام از جمله دعاهایی که داشته که الله جل والا در قرآن یاد کرده میگوید در دعای خودش وجعل لي لسانا صدق لسان صدق همونقم مشی ابراهیم علیه الصلاه و السلام فقط مجرد یاد نیک در این دنیا که ذکرشو یادش حفظ بشه نه همونمش رو سفیدی جلو الله جل والا جلوه الله جل و علا روسفید بشه ما در حدیث داریم جنازه رد میشه مردم یاد نیکی میکنن ازش رسول الله صلی الله علیه و آله چی وجبت وجبت چی چطور شو واجب شو شخص دیگری بدی ازش یاد میکنن بدی ازش یاد میکنن میگه وجبت وجابت چی شد چی فرمودن رسول الله صلی الله علیه و وقتی که تو اون شخص خوب را دیدی اینجوری گفتی چی شد فرمودن رسول الله صلی الله علیه و این شخص که به خوبی ازش یاد شد فرشتگانم در ازای اون دعای ترحمی که بهش کردن آمین گفتن منم گفتم که واجب شد دعای فرشتگان و دعای مردم در حق اون شخص خوب و نیک پذیرفته شد پیش مردم عزیز بود خوب بود و پیش الله هم و والا خوب شد به دعای خیر اونها به دعای خیر مردم خیلی مهمه من با رفتار خودم سبب میشم که نزد الله خوب بشم دو جنبه است تعامل ما با الله جل و علی و تعامل ما با مردم این دوتا سبب میشن من سعادت من بشم من خوشبخت بشم من سربلند بشم من یاد نیکی از خودم به جا بذارم اون چیزی که ابراهیم میخواد و الله هم بهش میده و میگم در قرآن و ترقن علیه في الاخرین یادنی که هم ازش به جا گذاشتیم و بعدم الله جل بازم و علی بازم میگه و هبنا لهم من رحمتنا و جعن لهم لسان صدق علیا یاد بزرگ آوازی بلندی را برای ابراهیم و دو تا فرزندش اسحاق و یعقوب گذاشتیم. با دیگه فرزندان هر اینجا بس اسحاق و یعقوب را رو میکنه. چه موقع این یاده بلند آوازی بلند یاد نیک از ما به جای گذاشته میشه؟ وقتی که ما تعاملمون گفتیم با خالق و با خلق خوب باشه. با بدی تو خوشکام نمیشی. تو خوشبخت نمیشی. عاقبت به خیر نمیشه با بدی. این جانتنی که در اختيار داري والله بقلنا نعمت بهداد اگر قدرشو ندوني اگر برئي خيرخواهي بديگران وخوبي بديگران استفاده نكوني بدي کردي با انتان و جانت ان وقت ان جسمت وبالا قردنت خواهد بود و تدعوك المنون دعاء صدق الا يا صاحي انت أريد اريد انت و المنون منون المنية منية انسان چه؟ اجل انسان مرق انسان وتدعوك المنون بدون كتومي مات صدر فرار میخونه میخوای بمیری آ مرگت نزدیکه چیکار کردی برای مرگت دعاء صدق فکر نکون که راه فراری گوریزی از اون مرگت برا ترس مرگ من و تو رو فرار میخونه کسی نیتونس از مر فرار بکنه که من و تو فرار بکنی و تدعوکل منون ودعاء صدق انا يا صاحي اي الا يا صاحبي اي رفیق بگو اینجا عبدلظا میگه این ترخیم يا صاحبي اسباب رفاقت از دلسوزيه بخوبی داره صداش میزنه برقات و نرمی داره صداش میزنه ألا يا صاحب أنت أريد أنت مارك ترافرامي هنا أي صاحب من أي رفیق من أنت أريد أنت خطاباً بتو هست خطاباً بتو هست عبدالله بن عمر رضي الله عنه راوية حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمان كن في الدنيا كأنك غريب عابر السبيل يا الدنيا غريب باش تعبري اذاك جويد الرد مش هم وقام الدنيا نباش بعد ميجي عبد الله بن عمر ميجي ايه دم سيد فلا تنتظر الصبح شابك شوك متسوب نباش نشو يعني فكر نكونك دي الصبح زندهي فكرني فكر كونك الان مخاي بيميري واذا اصبحت فلا تنتظر المساء لازمك شوك متطر شب نباش فكر يومك تام اخرين روزه زندگيتو داري ميميري وهاي التوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بينك زياد ياد مرگ باش چرا رسول الله اصلا توصيه ميکنن به ان كه زياد قبرستان بريم براي الا فزور القبور ترى بخاطر قياد اخرت باشي بنه تذكر الاخره قبرسون رفتن بخاطر عبرته خودته اونها رفتن اي خيري به اونها ميکني و خودت به ياد اخرتت ميشي بهتر همي رسول الله صص ميفاكفر من ذكر هادم اللذات و دروته هادم اللذات زياد به ياد مرغي باشيد كه خوشيها را از شما ميگيره زياد به ياد مرگ باشيد اراك باز دوباره بيتي ديگر توصيه و نصيحت يا ابو بكر و امثال او بکه ماهیم تحب و ذات خدرن ابت طلاق هل اکیاسو بدت اراک می بینم خیلی دنبال زن گرفتی اون زنانی که در خدور و در چادر سترشون میکنن، پشت پرده ای میذارنشون. دنبال عروسی برای خودت دنبال کنیزی دختری زیبایی خیلی دوستشون داری گفتم این از معزلات جامعه اسپانیا بود خرید و فروش کنیز و دنبال دختر بودن رقاسه ها و آوازخون ها و خیلی شهرت داشت در اسپانیا خصوصاً بحث ترانه و موسیقی و اینا و خصوصا این که بدونید یعنی یکی از درهای شیطان به سوی فحشا و منکر این موسیقی هست مجلسی درش موسیقی نیست الا که زن میاد و زن هم در موسیقی خودشو گم میکنه یعنی نمیتونی شما سخ میبینید زن تو موسیقی خودش تکن نده A man is not in music or music, even in music. A man, the Messenger of Allah said that they are faithful to the law. A man is just a man. They are faithful to the law. Not that they are faithful to the law. A man is faithful to the law. A man is faithful to the daughter who is a man. A man is a man, a man is a man. And God این دری از درهای فتنه هست این موسیقی که درش باز شد اون تبرج میاد اون آرایش میاد اون شما دیدید زنی بره به عروسی به جشن عروسی بره و آرایش نکنه الا ما رحم پیر پیرزنی باشه افتاده ای باشه شاید مجلس عروسیه و شیطانم تزیین میکنه این چیزا رو خصم برای زنا و ماها مردها هم وسیله ای هستیم برای این فتنه ها یعنی ما هم سببیم و ماها هم مفتونی دوشار این شرین هم میشین چقدر از جوانا میبینی سوار ماشین شدن ترانه گذاشتن دنبال اشق و حاله. از این اشق و حاله شروع میشه میره به نگاه نامحرم کردن میره به چه شرانی و الی آخر پراکه حب و ذات اخذ کی هست از ما که دوست نداره لذت ببره با دیدن زنان لخت و اوریان کی هست الا اینکه مرد نباشه مردی هست که حب شهوت توش نباشه حب به حب به لختی و اوریانی ب... زیبایی ها و مفاتن زن رو دیدن حس مردی که نخواد ببینه دوست نداشته باشه اراکه تحب عرسن ذاته خدا خب اینا از باب مزمت میگه تو دوست داری این دوستی را از دلت بکن این دوستی را بکن هر چیزی که این دوستی را برات ایجاد میکنه برنامه موبایله حذفش کن از گوشیت خودت راحت کن نذار شیطان وسوسه بده بکنه که چشمت بیفته اون حرام و این درس رو عبرت دون حدیث داریم حدیث کعبن مالک و هلال بن و مرار که الله جل جلاله اس خسشون بنیکی یاد میکنه در سوره تب و على الثلاثه الذين خلفوا هاجرش کان رسول الله صلی الله علیه و سلم دقسی هاجرش اون مده دیگه که وقتی که کعب میاد در رسول الله صلی الله علیه و زانو میذنه میگه میتونم شاعرم میتونم از خودم دفاع کنم ولی که عذ ندارم و بعد میاد زانو به زانو میشینه صادقانه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم هاجرش میکنه بعد میاد میس کنارش میگه سلام میکردم ببینم سلامم جواب میده یا نه نگاه میکنه در محرومیت از اون عاطفه و لطف رسول الله صلی الله علیه و قرار گرفته بود براش سخت بود که رسول الله صلی الله علیه و آله هجرش کرده باش حرف نمیزنه و الله هم جلاله یاد میکنه و علی الثلاثه الذین خلفوا انس این انچینین هج شدند ترک شدند اینجا تخلفشون این بود که انچینین ترک شدند حج شدند دنیا برای اونها تنگ شد سینه برایشون تنگ شد حتی و ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم نفسهم سینه‌هاشون تنگ شد. خب در اوج اون سختیها پادشاه قصان نامه می نیسه کاب یا به ما به پیمان زنبت میدیم پول بید میدیم قصرم بید میدیم بیا به هر چقدر کنیز قصی کاب چی کار می کنه نامه رو می گیره تو آتش می دازه نامه رو می گیره تو آتش می دازه برای چی؟ اسباب و ابزار وسوسه کنارش نباشه. به خودش اعتماد نداره به الله اعتماد داره. به خود اعتماد نه من برنامه تو گوشی هست من بس نمیشم نه اعتماد به خود نداشته باش خودتو ضعیف بدون نیاز شد میخوای دعوت بدی تو گوشیت بعدا رو حذفش کنم مثال دارم میزنم ابزار فتنه رو کنار خود قرار نده تا شیطان دری برای نفوذ در دلتو نداشته باشه دری برای رخنه کردن در قلبت نداشته باشه نذار شیطان رخنه بکنه تو ابزار و وسایل گذاشتی بعد میخوای حافظ قرآن بشی چطور میخوای با این موبایل حافظ قرآن بشی به من بگو با این رفیق بعد چطور میخوای حافظ قران بشی تو که دنبال لذتایی که چشمت زیبیاها رو ببینی، من میگم دخترش. الله بگو طبیعت رو میخوای ببینی اصلا. حالا بهانه هم داری، خوام یه چیزی یاد بگیرم. کتابو ول کردی بخونی، بعد میای چند تا پوستر و چند تا از کتاب بخونی؟ این طالب علم ايش میگن؟ طالب علم با این که چند تا پوستر از صفحه فلانی و صفحه فلانی میگیری، صفحه فلانی؟ والله این طلب علم است. طلب علم میدونی کجاست؟ چطوره؟ الله جل و طلب علم را مثال کی میزنه؟ مثال موسی علیه السلام، پیغمبرش سوره کیا گفتیم اس فتنه ها چی باشه فتنه علم چی میگه در در مقابل طلب علم موسی علیه الصلاه و السلام موسی علیه الصلاه و السلام الله جل وعلا زمانی که میخواد یه چیزی یادش بده میگه یوشع رو به عنوان یک خادم با خودت بردار حالا درس و عبرت تو خیلی زیاده که الله جل علا در سوره کف گفته و شیخ عبدالرحمن سعدی هم خلاصش کرده که توصیه می کنم حتما بخونید بعد از این قصه موسی و خسته تمام میشه علیه الصلاه و سلام شیخ عبدالرحمن سعدی درسارو خلاصه میکنه گلچین میکنه حالا منم شرح دادم البته در سوره کف الله جل علا میگه در بحث موسی میگه فعلا ماجا وزا یعنی موسی با یوشع قال لفتاه من خادمش اعتنا غدا انا بیاون نهارمون یعنی همون ماهی کی بخوریم لقد لقينا من سفرنا هذا نصب یعنی سفر خیلی زیاد خسته شدیم دوچار خستگی شدیم حالا ما وقتی که آداب طالب علم رو نوشت، اول چیزی که نوشتند اولین کسی که برای طلب علم هجرت کرده، سفر کرده کیه؟ موسی علیه السلام موسی الان داره خستگی میکشه، گرسنگی میکشه برای چی؟ برای اینکه توفیق و لیاقت همصحبتی با پیغمبری از پیغمبران برگزیده پیدا بکنه الله هم بهش میگه برو سفر برو به فلان جا با خود توشه و غذا هم بردار تا اینکه این لیاقت و شرف تا داشته باشی که با اون خدمت رو لیاقت بگم ولی بوده یا بگیم پیغمبر بوده حالا هرچند که بیشتر علما میگن که پیغمبر بوده طلب علم و خصگیه با جهد و تلاش و کوششه جابر بن عبدالله از مدینه بلند میشه سفر یک ماه میگه سفر یک ماه نه یک روز یک ماه میره پیش عبدالله بن به کجا به شام یک ماه میگه خودم توشه رو برداشتم رفتم به کجا به شام چرا میگه شنیدم که اون یک حدیثی را از پیغمبر عیسی داشتستم شنیده که من نشیده بحث قیامت و روبری الله جل وعلا این حدیث حدیثو من نشنیده بودم میگه شطوری خریدم توشه و کلیباری بستم شطوری خریدم شطور میخره یک ماه سفر میره ذره شو ول میکنه یک ماه کامل به خاطر چی به خاطر یک حدیث السحابي شنيده نشيده توفيق اللياقه انما يخشى الله من عباده العلماء توفيق ان خشيه وان منزله و ان رفعت پیدا کردن نزد الله جل وعلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ان رفعت بالا و والا در دنیا و اخرت داشتن با اسونی نیست با سختی باد مثل موسى زحمت بکشی باد مثل جابر ابن عبدالله الله رضي الله عنه زحمت بکشی اینا ارزش علم و ارزش دین را فهمیدن ارزش قول و سخن رسول الله سبحانه براشون از هر کالا و هر جوهر گرامبه هایی با ارزشتر بود والله این که از درس همینه اینجا میخواد به همون بری بده علم قابل قیاس با دنیا نیست نه با الماسش، نه با تلاش و نه با نقرهش علم قابل قیاس نیست علم کالای گرامبه هایی که که هیچ چیزی باش مقابله نمیکنه. اگر تو بدونی شرف علم اگر تو بدونی با این علم تو چی میشین از الله جل و چی خواهی داشت چه منزله و رتبه خواهی داشت در بهش و همچینی در این دنیا اگر تو بدونی چون نمیدونی قدرش نمیدونی نمیشینی پای حلقه علم نمیشینی پای کتاب خوندن نمیشینی پای حفظ قرآن چون قدر قرآن رو نمیدونی. اگر تو قدر قرآن را بدونی که با این قرآن میشه کوه را برداشت زمین را کند اگر تو قدر این قرآن را میدونی سی قرآن دستت نمیافتاد رفیقت بود یارت بود همه جاهات بود ولی چون تو قدر قرآن را نمیدونی شیطان شده یارت، مبال شده رفیقت پس ماییم که قدر قر قدر یه چیزی را دنیا سیم براش زحمت میکشیم برای جابر من عبدله رضی الله عنه چیزی نیستیه ما سفر رفته. ارزش سخ خصاس سلاملم از هر چیزی که در اون دنیا هست دنیا عملعونتون، ملعون الا ذكر الله اما لعن نس ان مشغول رحمت الهيه من سبب میشم با این رحمت گرفتم مرحوم بشم ارزشش رو میدونه از مدینه بولم میشه به شام ابایو بنصاری هم اینطور میره به مصر نزد عقبه بن عامر رضي الله عنهم اجمعين برای شنیدن حدیثی قدر و علم رو دونستان براش زحمت کشیدن و براش تلاش کردن وقتی که اصلا قدر یه چیزیو ندونه خودشو مشغول میکنه با چیزای علکی بیوده با چار تا تیت خوندن خودش قانع میکنه پلی که نگر خوشبختی خودش سربلندی خودش در کتاب دید در کتاب رو باز میکنه پاش از کتاب خونه نمیکنه میشینه کتاب میخونه مطالعه میکنه یا دروس علما رو گوش میده که وقتش علکی بره تو طالب علمی طالب علم ارزش علم رو میدونه هیچ چیزی در دلش جای اون علم رو نمیگیره طالب علمه یاد میشه از ابن تیمیه رحم الله بچه وقت قبل از اینکه بالغ بشه میخودش میگه یه خارم آدم رفتم به تفریح گفتم بیا بیورین تفریح گفت که نه شما برید من نمیام رفتن اومدم برادرش گفتم آو رفتین اونجا خوش گذشت آبی فلانی بوستانی بود خوردیم میتوی رحیم الله چی میگه جوابشو میگه شما رفتید چی خوردید ولی شما رفتید من از چی برخورد داشتم من چیکار کردم من کتاب فلانی فلانی رو حبس کردم بچه‌ها می کتاب رو حبس کردم معروف از بتمیه کتاب را از الف تا یاش حفظ میکند. قدرت حفظش شما فتوه را میخونید. شما مثلا از سیب و نقل میکنه و نقدش هم میکنه به حروفش. بدون کتابشش باشه. یعنی چون ابن كثير و دیگر طلابش پیشش بودن ابن غیر کتاب دستش نبود. مثلا طرف بیاد فتوازش میخواد حمویه را مینویسه. فتوازش میخواد تADMوری را مینویسه. کتاب مینویسه در یک روز بین مغرب و عشا یا بین عصر و عشا کتاب مینویسه. دیویی صفحه فقط بین عصرش بود تا بغربش و بعدشی تو ضمن اون کتاب میبینی که از صد تا مصدر علمی نقل میکنه از فلانی و فلانی و بعدم با کل اون جملات و کلمات به ترتیبش از حافظش نه از اینکه کتابو میسی بکنه بعد مصدر بهت بده بگه جلد فلانی صفحه فلانی نه همون سخن رو بهت کامل دقیق میاره این چیه این قوت حافظه و این قوت حفظ از کجا آمده؟ از قدر علم رو منزلت امر رو ابت طلاقه الاكياس بت ابت من جا ياد ميكنه يعني كي اگر اون زن اون دختري كه به دل عزيزن شيرينن فكر كن كه پيش همه اين طرييه اون كسي كه زيرك و هوشياره سطلاقش طلاقش كرد ابتا يعني اطلاق بات كامل سطلاقش طلاقش كرد داده الاكياس بت كاملا اون شخصي كه زيرك و هوشيار و دانا ه زيرك اون دختر و اون دنیا و اون زیبایی که تو بهش چشم‌پریدی اون هشیاران رهاش کردن کافیه که رسول الله صلی الله علیه و سلم نه تا همسر داشتن چند تا غزوه رفتن شما برید تو سیرت میخونید ده ساله ازدواج کرده در آخر حیاتش از 50 سالگی تا 60 سالگی نه تا همسر ولیکن بدر و احد خندق احزاب و چند تا غزوات داری که خود رسول الله صلی الله علیه و سلام میره یک ماه بر میگرده خودش زن و دنیا و زندگیشو رها میکنه تو چیه ای طالب علم تو که رسول الله ص ص تو هم همین طور رسول الله صلی الله علیه و سلام بود و دیگر پیغمبران الهی علمی از همه چیز پیششون عزیز سر حتی از زن و بچه نه انسان حقشون رو ادا نکنه نه ولی اینکه تو حق علم و حق خودت رضایع بکنی این جای رو داره حالا اینجا مثلا علما در شرح این بیت حدیث میارن اوثار میارن مثل حدیثی که همیشه زي في هالبته بسرب من برهاء مش demi الكيس ومن نفسه وعامله لما بعد الموت والعاجز مات بعد نفسه هواها وتمنى على الله ما ينها مش مش demi الخوب سهيني صلى الله صلى الله عليه وسلم بالخوب معناه يكون ليش تقرأ عندري الكيس زيراكم كسيك نفس خده شو محاسبه بكون دارين دنيا قبل الزخارف قبل ذيك حساب بش خده شو بكونه وعامله لما بعد الموت بفكر بعد ازمارجش بشه والعاجز درماندو نادان كسيك من اتبع نفسه و هواها طابعه هواي نفسش بشه وتمنع على الله الاماني و دنبال اماني دنياشو خوشيه دنيا باش بتوره الله جل وعلا ان قصيرا در سلعه كهف ششارم ميكونه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرما الله جل وعلا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه هواه وكان امره فرطا ولا تطع ولا تطع يعني نارو دنبال امكسيكه قلبش از من غافله ای طالب رفیقه رفیقه رفیق بد نباشه رفیق ناباب نباشه رفیق ان عامی جاهل که دنبال معصیت نباشه ولاتطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا ان كسيك غافل سبحان الله چطور طالب علم میشینه جلوی تلویزیون بعد راضی میشه به عنوان به بهانه اینکه یک اخباری را بشنوه زن عریان و لخت را ببینه سر برهنانو ببینه چشمش بیفته به اون حرام مجاد الله جل وعلا نفس كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم غض بصرك يا جوز غض بصرنا يا بعد رفيقه شده اون کافر دروغگو کذاب با اون خبرهایی که خدا میدونه از کجا با هم دیگه سر گوششو به هم اوردن دارن قالب میکنن به تو به نظر تو راست میگن درست میگن تو چطور رفیقه اون زنه اوریان قرار دادی یا اون رسانه بی سر و بی پای بی دین قرار دادی از اون رسانه‌های غربی بی دین دین ستیز والله آلوده میشه رسول الله صلی الله علیه وسلم تو چی میکنن به ما؟ رفیقت اون آهنگری قرار نده که در اون آتش میدمه یا بود را بد میکنه یا پیراهنت را میسوزونه رفیق بده رسول الله صلی الله علیه وسلم یه هموند رفیق بد را به دوستی نگیر اگر تو به دوستی نگرفتی این رسانه این تلویزیون کی را به دوستی گرفتی پس؟ پدرت، مادرت، فرزندت، همسرت چطور راضی شدی بشینی پایین این رسانه رفیقت این رسانه و اون رسانه بشه از این کانال و اون کانال کنترل رو برداری هی عوض بکنی یا موبایلت هم فرق نمیکنه. وله و من اغفلن قلبه و عن نه. ننشی با اون کسی که قلبش از ما غافله دنبال الله و یاد الله نیست الا ذکر الله و ما والله الله نیست و تبع هواه کسی که هواي نفسه نفس خودشه و کان امر و فرط امرشم زیاع و خسران و بدبختی و خاری دوری از آخرته اون کسی که دنبار آخرت نیست و دنبالش نباش هم مغمب آخرت باشه In از followingisen 순에서 known weli еёales whole بازم ضعیفه چون 사실은ish news شده 라이텔를 خب cause گفتم در the previous هست ril خب verliert自INE んと شده та Sel Orajee Ι甚至일 그리고 addition to the Nasrplate of Allah我們ர oui toc8 Homem- procure our statement southeast prophetíll notostante dabbạ to theavoiriti breaker. Say это mal therix then as a sheep Antwort ill of the following word fah pixチョ. 또 lap 사 نیست ولی خب معنیش در این آیه ای که گفته شده است فرمودید الله جل و علا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا و اتبع هواه هو كان امرؤ فرطا اون کسی که زیرا کیه حشیاره همونطور که گفتیم در این آیه به اشاره شده هموغمش آخرت و اون کسی که آخرت رو داره با اون هم صحبت میشه الله داره گوشزد میکنه به پیغمبرش اون کسی که همش آخرت نیست ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا اون کسی که غافل از آخرت و الله باش نشی یعنی باکی بشینم بون که که یاد الله میکنه کسی که دنبال علمه کسی که دنبال یاد الله هست این قضیه نیاز مجاهده از کجا بیاریم از کجا پیداش بکنیم کجا هست باید یک شخص حاضر باشه خود رفیقت ابن تیمیه قرار بده برو کتاب ابن تیمیه رو کتابی شافعی و کتابی نمیدونم هم. این همه عالم کتاب تفسیر عبدالرحمن السعدی ابن عثیمین چرا رفیقت اینو قرار نمیدی نیاز مجاهده داره والله سخت کتاب رو برداری مثل من بخونی بنویسی این کتاب و اون کتاب الله سخته. ولی بدون در ازای اون سختی توفیق پیدا میکنی و الذين جاهدوا فينا لنا هدي سو سهلنا هدایت کی نصیبت میشه وقتی که اون مجاهدت پیش بیاد تو جهاد نکردی مجاهدت نکردی و نفس خود چیره نشدی نرفتی در کتاب باز بکنی چطور میخوای هدایت بشی چطور میخوای روی پل سرات هدایت بشی روی روز آخرت میگه میشه بدون مطالعه میگه میشه بدون اینکه تفسیر قرآن رو بدونی نه باید این چراغ تفسیر و چراغ قرآن به دست داشته باشه که بتونی هدایت بشی تنام الدهر ويحك ويحك في غطيط بها حتى اذا مت انتبهت تنام الدهر شبرز صدخوب شب خابي رز خابي الان ديگه شده شب بیداری صبح ديگه خابن تو اس تنام الدهر چقد ميخوي بخابي والله وقت بخابتون قبرت اس انقد بخوب تا روز قيامت شو اي كسول ابي بسرعتت بزن ابي رو سر خودت بریز دوشي بغير صبح صبحت خاصم خب دوش بگیر خاصیت برطرف بشه یک روز از سفر اومدی شب دیر و خوابیدی نه اینکه هر روز شده خواب بعد از نماز صبح برکت را از خودت زدودی بعد میگه برکت تو زندگیمون نیست چطور برکت تو زندگیت بیاد و رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید وجعلت البرکه في بکوری هذه الامه برکت تو اول وقت این امته برکت با خواب میاد نه والله برکت او الذين جاهدوا با جهاد میاد با مجاهدت میاد شب زود صبح نخوابی شب زود بخاطر تهجد بلند میشی مثل رسول الله صلی الله علیه و آله چرا تهجد نکنی مجاهدهت میخواد دائما مجاهده را باید یاد بگیری از پیغمبران الهی الله جل و علا مثال زده در قران از پیغمبرانش برای اینکه ما یاد بگیریم از اون همت والا شو همت بزرگه شو هم مقامی که داشت نوح علیه السلام چی میگه انی دعوتهم جهاره عمیش عمیش تحادث بود همش خیر غای دیگران بود این همت عالیه ابراهیم علیه الصلاه و السلام همینطور ابراهیم نذاش محیط و جامعه روش تاثیر بذارن. اون موثر بر جامعه بود ولی جامعه روش تاثیر گذار نبودن. نه پدرش، نه مادرش، نه دوست و رفیقش. حتی تومنجنیقش کردن تو آتشش انداختن. کی تونه صغیرش بده؟ تونه تا تغییرش بدن؟ ولی شما سوخ شده 20 تومن، 30 تومن، 40 تومن، 50 تومن. ها، اونا جلو زدن از من. من اقا افتادم، اون ماشین خرید، اون بنز خرید، اون فلان خرید. من یو چی؟ ندارم. پراید ندارم. موتور برم بیام تاکی کی و اینم میگه اون سرقت گرفت اون رف، خونه ساق من هیچی تو کله نجستم خونه پدرش هستم هیچی ندارم تاثیر تو گذاشته این حرفا یا نه بی تاثیر نبودن فریبش هم خوردی ولی ابراهیم فریب نخورد ابراهیم علیه الصلاه و سلام فریب نخورد الا اللهش الا دینش الا عبادتش هممت از موسی یاد بگیر علیه الصلاه و السلام توشو کلوبار میبنده برای طلب یاد بگیر از جابر یک ماه خاطر یک حدیث یاد بگیر، اما با خواب روز و شبت شده خواب با این تو به جایی نمیرسی با تمبلی و سستی به جایی نمیرسی این الگو گرفتن از پیغمبران الهی نیست تنم الدهر وی حکا وی حکا وای بر تو هم به معنای وای وای بر تو چقدر زشته بر تو زشته که تو بخوابی فی غطیتن و بیاد خورپوفم بکنی صداتم بالا بیاد تو ان خوابت خوش خواب عمیق فرو بری و نخواهی هم بیدار بشی نه ساعتی میذاری به نمازی بیدار بشی نه ساعتی به تهجد هیچی نداری وای ح وای بر تو زشته بر تو تر ده فی غطیتن به تر اون خواب سخت فرو رفتی با اون غفلتت اذا مت اگر مردی اونجا بیدار میشی. اونجا بیاد خواهی اوورد که من چی دارم بهت میگم. اونجا هست که بیاد خواهی ورد که من چی دارم بهت گوشزد میکنم؟ در حدیث اومده هر حدیث ضعيفه بازم گفته شده الناس و نيامون فاذا ماتوا انتبهو اصلی نه داره یعنی سنده نمنداره حدیث صحیح ثابت هم الناس و نيامون فاذا ماتوا مردم خوابن اگر مردن بيدار میشن هرچند این حرفی که گفتم اون الناس و نيامون فاذا ماتوا انتبهو السفیان سوری نقل شده و همچنین از سهل تو سری ولی خب حدیثش از رسول الله صلی الله علیه و سلم خب معناش درسته ولی خب واضح دیگه وقتی روح به غرغره رسید الله جل وعلا فرصت توبه گرفته برای چی برای که اونجا میدونی که دیگه رفتنیه دیگه مرگ حقه فرشته گارا جلوت چشون میگینه اونجا هست که دیگه توبه از طرف پذیرفته نمیشه چون دیگه حق را دیدی آخرت را دیدی اونجا دیگه جایی برای پشیمانی و افسوس نیست اونجا که روح به غرقره رسید نه تو قبط رو بخابون منکر رو نکی رو سر خودت دوید نه روح که شروع شد از پاد بکشه پات سرد شد یخ شد بعد که خیره شد به بولاد داری فرشتگان و ملک الموت رو میبینی اونجا هست که میدونی کل عمرت به فنا رفت کل وقتت کل اون مالت همه چیز رو از دست دادی اونجا که آخرت جلو چش خودت دیدی میدونی که حرف الله حقه آخرتم حقه فکم ذا انت مخدوع و حتی لا ترعوی عنها و حتی فکم ذا انت مخدوع فکم ذا انت مخدوع, مخدوع؟ چقدر تو فریب ای؟ چقدر تو گول خوردی کم از باب تکسیر چقدر چه اندازه چقدر فریب این دنیا رو خوردی خودت میدونی بهتر از دیگران و کم ذا انت مخدوع فریب این دنیا رو خوردی گول این دنیا رو خوردی تا کی و حتی متى لا ترعى يعني الى متى توکی دست از این دنیا نمیکشی حتی متى لا ترعى توکی می خواد دست از این دنیا نکشی می خای دل به این دنیا بچسبین تا و حتی توکی چقدر می خای از این دنیا جنب بکنی کی میخواد دست از این دنیا بکشی لا ترهایی ای لا کی میخواد دست از این دنیا بکشی خیلی رو وردی به این دنیا سخت کسبیری به این دنیا ای دوست ای رفیق هوشیار باش بیدار باش بیاد آخرتت باش غافل <سؤال> نباش از آخرت آخرت الهی حق این پنج تا بیت اول با این نصایح ابو البیری رحمه الله و فسي جناته سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله والحمد لله صلى الله محمد و محمد